روزگاری بیوهی بینوا که پسری کوچیک داشت روزگار می‌گذراند با نگاه اول نمی‌شد حد زد که پسر از هزار پسر بچه‌ی کوچیک دیگه متفاوته اما با کمی دقت می‌شد غلاف آویختی شمشیر رو توی پهلوش دید هرچه بیشتر پسر قد می‌کشید غلاف هم بزرگتر می شد. پسر کوچیک شمشیری رو که توی نیام جا می گرفت در باقی پیدا کرده بود اون هر روز شمشیر رو برمیداشت تا ببینه آیا توی نیام آویخته از کمرش جا می گیره؟ اما اگرچه نیام با گذشت زمان بزرگتر و بزرگتر میشد هنوز خیلی مونده بود که شمشیر و غلاف با هم جور بشن به هر حال سرانجام روزی رسید که شمشیر براحتی توی نیام سرید. پسر به قدری خوشتل و زوغ زده شده بود که اون چیزی رو که می دید اصلاً باور نمی پس هفت بار شمشیر رو درآورد و توی نیام فرو کرد و هر بار شمشیر راحتتر از دفعه پیش توی نیام خودش جا می گرفت. پسر اگر چه به شاد شده بود تصمیم گرفت که در این مورد حرفی نزنه، مخصوصا به مادرش چیزی نگه چون که هر چی اتفاق میافتاد به گوش همسایه ها با اینکه اون تصمیم گرفته بود حرفی نزنه به طور کلی نمیتونست اون چی رو که اتفاق افتاده پنهون کنه یه روز صبح که با مادرش داشت صبحونه میخورد حرفایی زد اون گفت مادر جون دیشب خواب قشنگی دیدم اما نمیتونم به کسی بگم. مادر گفت: اما به من میتونی بگی. حتما خواب قشنگی دیدی که اینقدر شاد و سر حالی. پسر گفت: نه مادر جون. نمیتونم خوابم رو به کسی در میون بذارم. مگه موقعی که درست عذاب دراد. مادر با صدای بلند گفت: میخوام بدونم چه خوابی دیدی و حتما هم میفهمم. انقدر کتکت میزنم تا زبون باز کنی. اما هر کاری که کرد فایده نداشت. زیرا نه حرف و نه کتک باعث نشد که اون رازش رو به زبون بیاره. وقتی دست مادر از کتک زدن خسته شدن، دست از سر پسر برداشت و بچه که تمام بدنش کبود شده بود و درد میکرد به باغ دوید و دوزانون کنار شمشیر کوچکش نشست و گریه کرد. شمشیر که تو زمین فرو رفته بود به اختیار خودش ای درست کرد و همزمان با گریه های پسر جوون چرخون چرخون چاله رو می میکرد و اگر کسی به جز پسر به طرفش دست می میکرد تا اون رو برداره بند جوری زخمی میشد. دحثه که پسر دست دراز کرد شمشیر از حرکت ایستاد و پسر به نرمی اون رو توی قلافش فرو کرد. پسر مدت زمانی گریان و نادان توی باغ نشست. بعد سر و صدای شنید و معلوم شد که پادشاه به اونجا میاد. اون به یکی از ایر دستاش گفت برو ببین چه کسی گریه و زاری میکنه. ظرف چند دقیقه ملازمه پادشاه بازگشت و گفت سرورم پسری کوچیک روی زمین زانو زده و هق, هق گریه میکنه چون که مادرش بد جوری کتکش زده پادشاه دستور داد فورا اون رو نزد من بیارید بگید که پادشاه دنبالش فرستاده چون که از اون جایی که خودش در طول زندگی هرگز گریه نکرده نمیتونه گریه دیگران رو تحمل کنه با شنیدن پیغام پسر اشکاش رو پاک کرد و همراه خدمتکار به طرف کالسکی سلطنتی رفت. پادشاه پرسید: پسرم میشی؟ پسر در پاسخ گفت: بله، اگه مادرم پسره، پادشاه به ملازمش دستور داد که پیش مادر پسر بره و بپرسه که آیا حاضره که پسرش به پادشاه بده تا اون رو با خودش به قصر ببره؟ همین که پا به دوران مردی گذاشت زیبا ترین دخترش رو به همسریش در خواهد آورد جای خشم و سبانیت زن بیوه شادی کرد اون دوون دوون به سوی کالسکه پادشاه رفت و عدای احترام کرد و گفت پسرم امیدوارم از اعلی حضرت همیشه فرمان ببرید. پسر خودش رو جمع جور کرد. مادر که به خونه یک کوچیکش بازگشت، پسر از پادشاه اجازه خواست که به خونه بره و شمشیرش رو که توی باغچه جا گذاشته برداره. پادشاه اجازه داد. وقتی اون به باخچه رسید، شمشیر رو از دل خاک بیرون کشید و اون رو توی نیام گذاشت. اون سوار کالسکه شده و همگی به طرف قصر به راه افتادن. بعد از پیمودن بخشی از راه پادشاه پرسید چرا به تلخی گریه می کردی؟ پسر گفت مادرم کتکم زده بود. حالا برای چی کتک زده؟ چون خوابم رو به اون نگفتم. چرا این کار رو نکردی؟ تا زمانی که خوابم جامعه حقیقت نکوشه به کسی نمیگم به من هم نمیخوای بگی نه حتی به شما هم نمیگم پادشاه بزرگ پادشاه لبخندی زد و گفت باشه اما مطمئن هستم وقتی به قصر رسیدیم خواهی گفت و درباره موضوع های دیگه با اون صحبت کرد کمی بعد به قصر رسیدن. پادشاه به دختراش گفت براتون هدیه ی قشنگی آوردم چون پسر کوچیک خیلی زیبا بود اونها با دیدنش خیلی خوشحال شدن و بهترین اسباب بازی هاشون رو به اون دادن روزی موقعی که پادشاه دید اونها با هم بازی میکنن به دخترانش گفت مواظبش باشید اون رازی داره که به هیچ کس نمیگه بزرگترین شاهدوه گفت به من حتما میگه اما پسر فقط سرده داد شاهدوه دومی گفت به من که میگه. پسر گفت به تو هم نمیگم. کوچکترین شاهدوه که از دوتا خواهر دیگه زیباتر بود گفت به من حتما میگه. پسر مثل دفعه پیش گفت تا موقعی که خوابم تعبیر نشه به کسی نمیگم. اگرم کسی پاپیم بشه و بیش از حد پافشاری کنه، کتکش میزنم. پادشاه با شنیدن این حرف اندوکی و خشمگین شد. اون پسر کوچیک رو خیلی دوست داشت، اما با خودش فکر کرد کسی که سر به فرمانش نمیذاره، وقت نمیتونه پیش خودش نگه داره. پس به زیر دستاش دستور داد که پسر را از قصر بیرون بندازند تا زمانی که عقلش سر جاش نیمده به قصر راه ندهند پسر رو که از قصر بیرون بردن شمشیر با صدای بلند به چکاچ ها گفتاد اون اگرچه از رفتار بد و ناپسندی که با اون شده بود بسیار ناراحت و غمگین بود اما حرفی نزد البته خدمتکارا با اون مهربان بودن و بچه هاشون براش میوه و انواع چیزهای قشنگ وردند و کاری کردند که او دوباره سراحال اومد و شاد شد. اون تا ده سالگی پیش اونها زندگی کرد. در این میان دو شاه دخت بزرگتر به دوره زنانگیشون رسیدن و با دو پادشاه قدرتمند که بر کشورهای بزرگ فراسوی دریا حکومت می‌کردند، پیوند زناشویی بستند. کوچکترین شاهدخت هم پا به سن ازدواج گذشته بود. اما اون که تربیت خاصی داشت، دست رد به سینه همه شاهزادگان خاستگارش زد. روزی اون تنها و دلزده از زندگی یک نواد توی قصر نشسته بود که ناگهان به فکر افتاد، خدمتکاران قصر چه می اون میخواست با رفتن به خونه هاشون خودش رو سرگرم کنه. پادشاه با مشاورانش در حال مشورت بود. ملکه هم توی بستر بیماری افتاده بود. پس کسی نبود که مانع رفتن شاه دخت بشه. اون هم شتابان از باغ گذشت و به طرف خونه های خدمتکاران. بیرون خونه هاشون چشمش به پسر جوانی افتاد که از هر ای که تا اون زمان دیده بود زیباتر بود. چیه یک لحظه اون رو شناخ. چون اون کسی به جز پسری که زمانی هم بازیش بود نبود. شاهدوخ گفت رازت رو به من بگو تا همسرت بشم. اما پسر جوان فقط گفت اگه باز هم به رازشو بدونه همونگونه که قبلاً گفته کتکش میزنه. شاه دخت که هم عصبانی و هم دلازرده شده بود با سرعت به نزد پدرش رفت و شکایت کرد. پادشاه سوگند خورد و گفت اگر هزار جان داشته باشه می‌کشمش. درست همان روز بیرون شهر چوبه دار برپا کردن و مردم زیادی گرد اومدن تا به دارکشی مرد جوان رو که جرئت کرده بود دختر پادشاه رو کتک بزنه تماشا کنند. دارزن زندانی رو کتبسته پای چوبگ دار برد و میان سخوت مرگبار در حالی که قاضی حکم را میخوند یه شمشیر آویخته از بند کمر مرد جوان به چپاچا گفتاد. بلافاصله صدای زیادی بلند شد و کالسکه زرین با پرچمی سفید بیرون آویخته از پنجرهش از روی سنگها تلقا طلو کنان به پیش اومد. کالسکه زیر چوبه دار و پادشاه سرزمین مجارها پا بیرون گذاشت و تقاضا کرد که مرد جوان بخشیده بشه. پدر شاختخت گفت آلی جناب، اون دخترم رو فقط به این خاطر که از اون خواسته رازش رو بگه کتک زده؟ پادشاه مجارها گفت، اون رو به من باگذار کنید. مطمئن هستم که رازش رو به من میگه و اگر این کار رو نکنه، حتما رازش رو به دخترم که مثل ستاره بامدادیه خواهد گفت. شمشیر بار سوم به چکاچاک در و پادشاه خشمگینانه گفت باشه حالا که خیلی خواهان اون هستی اون رو به تو میدم. فقط هرچه زیودتر اونو از اینجا دور کنید که نمیخوام ریختش رو ببینم. و به مرد دارزن علامت دار که مرد جوان رو رها کنه. نوار پارچه ای رو از روی چشماش و تناب رو از روی مچهای دستش باز کردن. اون توی کالسکه کنار پادشاه نشست. کالسکران به از پا میزد و به سوی بودا به حرکت در اومد. تا مسافتی دراز پادشاه ظریفانه به اون سخن میگفت و وقتی متوجه شد که خاطر همراه جدیدش کاملا آسوده شده از اون پرسید که رازش چیه و چرا خودش رو به خاطر اون به دردسر سر انداخته. جوان توی پاسخ گفت تا زمانی که خوابم تعبیل نشه جامعه عمل به خودش نپوشه، اون رو به شما هم نمیتونم بگم. پادشاه لبخند زنان گفت <تصفيق> به دخترم حتما میگی. مرد جوان گفت به هیچ کس نمیگم. و در حالی که حرف میزد شمشیر با صدای بلند چکا چاک کرد. پادشاه حرفی نزد اما اطمینان داشت که جوان در مقابل زیبایی بیهمانند دخترش لب از لب باز میکنه راه سفر به بودا طولانی بود و چند روزی به درازا کشید شاه دخت زیبا توی باغ سرگرم چیدن گلهای سرخ باغ بود که کارسک وارد محبته قصر شد وقتی همه از که پیاده شدن و پا روی پله های مرمر جلوی قشت گذاشتن شاه دخت فریاد زد به به چه جوون خوشگلی آیا اون رو از سرزمین پریان آوردین؟ پادشاه که از پرسش دخترش کمی ها شده بود چون اون هرگز با هیچ مردی حرف نمیزد، زد پاسخ داد اون رو از پای چوبه دار آوردم. دختر پر رو گفت: مهم نیست که از کجا آوردین، اما من فقط با اون عروسی میکنم، نه کس دیگه. هر دو کنار هم تا زمان مرگمون زندگی میکنیم پادشاه گفت: هر وقت تونستی رازش رو بفهمی، نظرت عوض میشه. به هر حال، اون از یک خدمتکار بیشتر نیست شاه دخت گفت برام مهم نیست زیرا مهرش به دلم افتاده اون رازش رو به من میگه و با این کارش درست وسط قلبم جا میگیره اما پادشاه فقط سرش رو تکون داد و دستور داد که پسر جوان رو توی خونه تابستونی اقامت بدن روزی تقریبا یک هفته بعد شاه دخت قشنگترین لباسش رو پوشید و به دیدار پسر جوان رفت. اون به قدری زیبا و ترگل شده بود که پسر با دیدنش کتابی رو که سرگرم خوندنش بود از دستش پایین انداخت. اون زبانش بند اومده بود. شاه دخت با و به پرسید بگو راز عجیب چیه؟ اصلا توی گوش هم زمزمه کن. جایزه خوبی پیشم داری. پسر پاسخ داد. فرشته زیبا. عاقل باش و چیزی نپرس. اگه دوست داری سالم به سمت پدرت برگردی درباره یه رازم نپرس. تمام این سالها رازم و نگه داشتم و حالا هم اصلا غص ندارم اونو با کسی در میان بذارم. اما دوشیزه گوشش به این حرف ها نبود و پاشو توی کفش کرد و پشت هم از اون خواست که رازش رو بگه. آخر سر، پسر که حوصلش سر رفته بود، کشیده ای به صورت دختر پادشاه زد. به طوری که خون از دماغش به راه افتاد. دختر از درد و خشم جیغ کشید و فریاد کنان به قصر بازگشت. پادشاه منتظرش بود تا خبر موفقیتش رو بشنبه. اما وقتی رقه های خون رو, رو روی لباس دخترش دید، فریاد زد. پسرک که تخم اجده ها اینقدر گرست نگی تا بمیری. و فورا دستور داد که بناها و آجرچین شهر رو به نزدش بیارن. پادشاه به اونها گفت، هر زود تر برجی بسازید. داخلش به اندازه یک چارپایه و میزی خوچیک جا داشته باشه و نه چیز دیگه. بنده ها و چین ها دست کار شدن و در ظرف دو ساعت برژ گرد کوچیکی ساختن. بعد به قصد رفتن و به پادشاه اطلاع دادند که دستورش اجرا شده. اونها سر راهشون شاه دخت رو دیدند که میخواست با یکی از بنده ها بی اون که کسی متوجه بشه صحبت کنه. همین که بقیه به قدری که چیزی نشنبندیون شدن، شاه دوخت از بنا خواست که یکی از آجرها رو شل کنه تا با برداشتنش بشه اشکاف شکاف اون غذا و نوشیدنی رو عبور داد بنا گفت خیالت راحت باشه درستش میکنم و برگشت و ظرف چند دقیقه یکی از آجرهای بدنه پایین برج رو شل و قابل جابجایی کرد وقت غروب جمعیت زیادی برای تماشا اومده بودن جوان رو به طرف برج بردن و بعد از اینکه حکم زندانی شدنش رو به خاطر رفتار زشت با شاهدخت خوندن اون رو به داخل برج انداختن اما شاهدخت هر روز صبح از اون شکاف به اون غذا و نوشیدنی می هر سه روز پادشاه به وزیرش میگفت که از نردبونی بالا بره و از پنجره کوچیک بالای برج ببینه آیا پسر زنده است یا مرده. و وزیر هر بار خبر می که پسر زندانی زنده و تندرسته. پادشاه گفت: حتما ترفندی جادویی توی کاره. این وضع تا مدتی به درازا کشید. تا اینکه روزی قاصدی از طرف سلطان بزرگ با نامه‌ای و سه ساقه‌ی نی برای پادشاه از راه رسید. قاصد تعظیم کرد و گفت: سرورم به من دستور داده به عرض شما برسونم که اگر نتونید بگید هر کدام از این سه ساقه‌ی نی از نزدیکترین جا بریشه از وسط و از نوک رشد میکنه، با شما از در جنگ در خواهد اومد. پادشاه با شنیدن این پیغام به حراس افتاد و با اینکه که ساقه های نی رو در دست گرفت و به دقت وارسی کرد نتونست هیچ فرقی رو بینشون تشخیص بده. اون چنان در غم و غصه فرو رفت که دخترش متوجه شده و دلیلش را پرسید. پادشاه گفت افسوس دخترم مگر میشه ناراحت نباشم سلطان بزرگ برام سه تا ساقه نی فرستاد و گفته اگر نتونم بگم کدوم یکی از نزدیک ریشه، کدوم از وسط و کدوم یک از نوک رشد میکنه به جنگم میاد و میدونی که سپاهش بسیار بزرگتر از سپاه همه شاه دخت گفت پدرجان خودت رو نباز، حتما پاسخش رو پیدا می کنی. و به طرف برج آجوری کوچیک دوید و هرچی اتفاق افتاده بود و برای مرد جوان تعریف کرد. پسر گفت، طبق معمول هر به بستر بروه و راحت بخواب. صبح که شد به پدرت بگو تو خواب دیدی که باید ساقه نی رو توی آب گرم بذاریم و بعد از مدتی ساغهی که نه به ته آب بره و نه روی آب بمونه همونه که باید از وسط قط و کاشته بشه. ساغهی هم که روی آب شناور میمونه از نوکش رشد میکنه. صبح روز بعد شاه دخت خوابش رو برای پدرش تعریف کرد. با شنیدن حرفهای اون پادشاه با در آوردن نیها از آب توی هر ساقه برشی ایجاد کرد و به آنکه اشتباهی بکنه اونها رو توی دست قاصد سلطان گذاشت و اون چرا آموخته بود توضیح داد سلطان که متوجه شد پادشاه مجارها به راز این کار پی برده از موزه خود عقب نشست و اعلام جنگ نکرد یک سال گذشت سلطان یک بار دیگه به فکر جنگ افروزی با پادشاه سرزمین مجارها افتاد اون قاصدی رو با سه کوره نزد پادشاه فرستاد و از اون خواست که بگه کدم یکی از کوره ها صبح نیم روز و شب به دنیا آمده و اگر تا سه روز پاسخی دریافت نکنه فوراً به جنگش خواهد اومد. قلب پادشاه از خوندن نامه گرفت. اون انتظار نداشت که بخت نیک بار دیگه به سراغ دخترش بیاد و بار دوم پاسخ درست پرسش سلطان رو تو خواب ببینه. تو اون زمان تا اون توی کشور شیوع پیدا کرده بود و بسیاری از سربازای سپاه رو به زیر خاک برده بود. شاهدخت متوجه حال و روز دردمندانه پدرش شد و علتش رو پرسید. پادشاه در پاسخ گفت از سلطان نامهای دریافت کردم؟ اون سه کور رو برام فرستاده و از من خواسته که بگم کدوم یک از کار اس صبح، کدوم یک در نیم روز و کدومشون شب هنگام به دنیا اومده. و اگه نتونم پاسخی بدم، با من دوباره جنگ کنه شاه دخت گفت: پدرجان اصلا به دلت قصه راه نده. من مطمئن هستم که این مشکل هم حل میشه. و به سمت برج آجوری کوچیک دایید تا موضوع رو با پسر جوان زندانی درمیون بذاره. پسر جوان گفت به قصر برگرد سنم دلم. شب که به بستر رفتی توی خواب جیغ بکش. یعنی باید وانمود کنی که جیغ میکشی. اونقدر بلند جیغ بکش که پدرت بشنبه. به اون بگو خواب دیدی که اون رو ترک ها گرفت و با خود میبرد. چون نتونسته پاسخ مربوط به کره اسب‌ها رو پیدا کنه. همان اون موقع جوونی که توی برج آجوری زندانی کردی، از راه میرسه و میگه که کدوم کره هنگام صبح، کدوم توی نیمروز و کدومی که شون به دنیا اومده. شاه دخت هرچی رو که به اون گفته شده بود، مو به مو انجام داد. همین که حرف‌هاش تمام شد، پادشاه دستور داد که برج رو خراب کنن و زندانی رو به نزدش ببرند او گفت اصلا فکرش رو هم نمی کردم که بعد از این همه مدت بی غذایی زنده بمونی حالا که بعد از این فرصت طولانی از کارها توبه کردی من هم تو رو می بخشم به شرط این که تو این تعینایی که دوچارش هستم کمکم کنی نامه سلطان رو بخون متوجه میشی که اگر به پرسش اون پاسخ درست ندم در نتیجه جنگ مرگباری با کشورم به راه میندازه. مرد جوون نامه رو گرفت و به دقت خوند. بعد گفت: بله، میتونم کمکتون کنم. فوراً سه تقار شبیه به هم بیارید. در یکی از تقارها جو دو سر، توی دیگری گندم و در سومی جو معمولی بریزید. کرهی که از جوه دو سر بخوره هنگام بامداد به دنیا آمده. کرهی که به سراغ گندم بره توی نیم روز به دنیا آمده و کرهی که جو بخوره شب ها به دنیا گذاشته. پادشاه به راه های پسر جوان عمل کرد و با مشخص کردن زمان زایش هر کوره اونها را به ترکیه باز فرستاد و در نتیجه تو اون سال جنگی در نگرفت سلطان ترک که برای فتح مجارستان دندان تیز کرده بود وقتی که دید با هر نخشهی که کشیده و دست به هر توتهیی که زده کاری از پیش نمیبره بسیار خشمگین شد اون به دنبال خالش که زنی ساهره و بعد سرش بود فرستاد که با اون مشورت کنه که دفعه بعد باید چه کاری بکنه خاله پس از شنیدن همه ماجرا و بررسی همه جوانب پاسخ داد این پادشاه نیست که پاسخ پرسش هات رو میده اون بیش از این کودنه که بتونه چنین کاری بکنه شخصی که پاسخ معماها رو پیدا میکنه پسر زنی بی که اگر زنده بمونه روزی پادشاه مجارستان میشه پس اگر چشم دنبال تاج و تخت اونجاست باید اون رو به اینجا بکشی و سرش رو زیر آب کنی. بعد از این گفته بود نامه دیگه به دربار پادشاه مجارستان فرستاده شد که تو اون اومده بود اگر ظرف سه روز پسر جوانی که توی قهش هست و به ترکیه فرستاده نشه سپاه بزرگی از مرز خواهد گذشت و قلب پادشاه با خوندن نامه قستدار رو در هم فشارده شد. چون اون خودش رو قدردان پسر جوون میدونسته و دلش نمیخواست که اون رو از دست بده اما جوون فقط میخندید و به پادشاه گفت که اصلا هراسی به دل راه نده و فقط دستور بده که توی شهر دنبال دو جوون شبیه به هم بگردند اون میخواست با تغییر چهره خودش رو همانندشون بکنه این بار هم شمشیر را بیخت از کمرش با صدای بلند به چکچ ها گفتند. بعد از رس دراز دو برادر دوقلو پیدا شدند. اونها به قدری شبیه هم بودند که حتی مادرشون نمیتونست فرق بینشون را تشخیص بده. پسر جوان نقابی به اندازی صورت خودش غالب گرفت که از هر نظر شبیه به چهره دو برادر. وقتی نقاب رو به چهره زد هیچکس متوجه فرق بین اونها نشد اونا فوراً به سمت قصر سلطان سفر کردند و پس از سفری دراز به مقصد رسیدن. اونا یک راست به حضور سلطان رفتند اون با علامتی به اونها فهموند که نزدیکتر بشند اونا تعظیم کردن و احترام کردن سلطان درباره سفرشون پرسید و اونها همه چیز رو با صحبت یکسانی تعریف کردند. اونا همه کارهاشون مثل هم بود. مثلا اگر یکی میشه تا غذا و دو نفر دیگه هم همین کار رو میکردن. انگار ستایی یک بدن بودن و جدایی پذیر از یک دیگه. سلطان که اصلا نتونسته بود تفاوتی بینشون تشخیص بده، به خالش گفت که اونقدر بیرحم نیست که بتونه هر سه رو بکشه. ساهره گفت خب فردا متوجه تفاوتشون خواهی شد چون آسینه یکی از اونها بریدگی حتما داره. موقعی که ساهره ها نامریان اون یواشکی وارد اتاق سه پسر جوان که توی بستر خوابیده بودن شد و با یک قیچی که همراه داشت آسین روی یکی از پسرها رو که از دیوار آویزون بود برش صبح جوان که متوجه چاک خوردگی آسین لباسش شده بود، آسین های دو پسر دیگر رو هم مثل خودش چاک داد. بعد هر سه برای خوردن سپونه با سلطان پایین رفتن. ساهری پیر کنار پنجره پشت به اونها ایستاده بود و بانمود میکرد که اونها رو نمید. چون همه ساهره ها توی پشت کله هاشون چشم دارن. اون متوجه شد که نه فقط آسین لباس یکی از پسرها بلکه آستین هر سه نفرشون چاک خوردگی داره و اونها باز هم مثل قبل مثل همن. بعد از صرف صبحانه سلطان که از این خسته شده بود گفت که میخواد تنها باشه و به نقشه های دیگه فکر کنه. سه جوون هماهنگ با هم تعظیم کردن و به کشور خودشون برگشتند. شاه شادمانه به پسر جوون خوش اومد گفت. اما آرامش جوون بیچاره زمان درازی طول نکشید. زیرا روزی نامه دیگه از سلطان به دست پادشاه رسید. توی نامه اومده بود مرد جوونی که توی قصر پادشاه از اونجا که شخصی خطرناکه باید فوراً تک و تنها به ترکیه فرستاده بشه. شاه دخت وقتی پی به مطالب نام برد گریه کرد. جوان به اون گفت: مهربانوی قلبم، گریه نکن. همه چیز درست میشه. من فردا با طلوع خورشید به راه می‌افتم. صبح با برومدن خورشید پسر جوان راه سفر دراز به دربار سلطان رو پیش گره و بعد از چند روز به قصر رسید. ساحره پیر کنار دروازه منتظرش بود. وقتی جوان از دروازه میگذشت، اون به زمزمه گفت: این آخرین باره که از این دروازه میگذری. همون موقع شمشیر چکاچاک کرد و جوان بی که ساحره رو نگاه کنه به راهش ادامه داد. وقتی اون از آستانه در تالار میگذشت پنزده تا سرباز مسلح ترک که سلطان پیش آنها ایستاده بود راهش را بستند ناگهان شمشیر از نیام بیرون سورید و در یک آن سرهای هر پانزده سرباز سلاح به دست رو بر زمین انداخت اما به سلطان آسیبی نرسوند بعد شمشیر به نرمی توی غلاف خود فرو رفت ساهره که این صحنه رو دید، همون موقع متوجه شد تا زمانی که اون شمشیر پیش پسر جوونه، تمام نخشه ها و توطئه‌هاشون راه به جایی نمیبره. پس در صدد بر اومد که هر طور شده همون شب شمشیر رو بدزده. شب وقتی ساحره پا به اتاق گذاشت، شمشیر از نیام بیرون اومد. و با ضربههایی دماغ ساحره رو که روکشی آهنی داشت به زمین انداخت. صبح که سرتا با گروهی سرباز برای دستگیری مرد جوان و به دست آوردن شمشیر به سراغش رفت، شمشیر از نیام بیرون اومد و به جون تک تک سربازهای مسلح افتاد. و بدون اینکه پسر جوان خراشی برداره، همه رو تیکه تیکه کرد. در این بین شاه دختر با گذشت روزها افسردتر شد. مرد جوان باز نگشته بود و اون روز به روز دل سردتر و و دارتر میشد. در آخر پدرشون رو به همراه دستهای سرباز کاراز موده به سمت سلطان فرستاد. اون سرافرازانه پیش سربازا پیش سربازها که همگی لباسهای یکیسانی پوشیده بودن به پیش میتاخت هنوز چند فرسنگی از شهر دور نشده بودند که مرد جوان رو با شمشیر آبیخته از بند کمرش تر دیدن. وقتی اون همه کارهاش رو تعریف کرد، فریاد شادی و سرخوشی بلند شد و همه اون رو در میان گرفتن و پیروزمندانه به قصر بازگشتن. پادشاه اعلام کرد که مرد جوان شایستگیهاش رو نشون داده و سزاوار اینه که دامادش بشه. پادشاه در ادامه گفت از اون جایی که خودش پیر شده و رسیدگی به امور کشور براش دشوار شده سکان اداری کشور رو به دست با کفایت مرد جوان میسپاره اما مرد جوان گفت که پیش از هر کاری باید نزد مادرش برگرده پادشاه اون رو به همراه گروهی سربازه با تجربه محافظ با شکوه و عظمت راهی کرد زن پیر با دیدن سوارای آرسته و با شکوه جلوی خونهش به حراس افتاد و بعد از دیدن مرد جوان و زیبا و خوش لباس مات و متحیر موند. اون مرد جوان از اسب پیاده شد و دستاش و بوسید. اول نشناخت پسر گفت حالا مادر عزیز تر از جانم رازم را بشنو. من توی خواب دیدم که پادشاه مجارستان میشم. و حالا خوابم جامعه حقیقت به خودش گرفته. زمانی که در آغاز جوونی بودم از من خواستی که خوابم تعریف کنم. اما من سپود کردم. چرا که اگه رازم فاش می و به گوش پادشاه مجلستان می رسید حتماً من رو اگر کتکم نزده بودی هیچ چیزی که تا الان اتفاق افتاده اتفاق نمی افتاد. و من پادشاه